يطاردو تعقیب میکند جرب تجربه کن شوهده مشاهده شد یغلفو کادو میکند بسته بندی میکند کان اسد یطارد غزالتا فتعبت الغزاله فوقفت وقالت للأسد انت كل حياتك اکل جرب الحب يا اخي المهم انه قد شوهد الاسد يوم امس وهو يغلف ايفون شيره داش دنبال آهو میکرد آهو خسته شد و ایستاد و به شیر گفت تو همه زندگیت خوردنه عشق رو هم تجربه کن داداش خلاصه اینکه دیروز شیره در حال کادو کردن گوشی آیفون رؤیت شده